به نام خدا سلام میگن افسانهها برای این خرد شدن که تو من و ما و اونها گوش بدیم و خودمون رو برای لحظه هرچند کوتاه فراموش کنید افسانهها در همین دوره های عمر از کودکی تا پیری آدمی ما رو به طرف خودشون میکشوند و این خصلت و ویژگی اصلی افسانه هاست چه وقتی که کودک از مادر خودش افثانهی رو میشنوه و به دنیای رؤیاها ها سفر میکنه و چه وقتی که شهرزاد شیرین سخن لب به قصه باز میکنه و افسانه و قصه ای رو بازگو میکنه افسانهای رو براتون نرد می کنم از مردمان سرزمین عرب برگرفته از کتاب های مردم عرب خوزستان به نام افسانه ابلخیر و که ابل گردآوری یوسف عزیزی بنی طروف و سلیمه فتوهی روزی روزگاری در سرزمین عرب دو پسر جوان به نام های خیر و عبالشر بودند که با هم در یه دکون نونوایی کار میکردن کار اونها آتیش کردن و سوخت رسوندن به تنور بود روزی از روزها عبالشر رو کرد و عبالخیر و گفت هیچ میدونی توی دشتای روبرو برداشت محصول شروع شده بعد اضافه کرد من قصد دارم به جای کار کردن توی نونوایی به مزارع برم و اونجا مشغول کار بشم اینجوری پول بیشتری آیدن میشه ابوالخير کمی فکر کرد و گفت فکر خوبیه. منم با تو میان اینجوری دیگه تنها نیستیم و بعد قرار گذاشتن صبح زود به طرف دشت روبرو حرکت بکنن صبح زود بود که هر یک مقداری غذا و آزوقه، در دو کیسه گذاشتن و راه افتادند اونا رفتند و رفتند و عاقبت خسته و گرسنه از حرکت ایستادند ابوالشر و عبال خیر پیشنهادی داد و گفت اول غذایی رو که تو تو کیسه داری با هم میخوریم و غذای منم میمونه برای یه وعدهی دیگه قبوله به راحتی پیشنهاد ابوالشر رو پذیرفت و قضای خودشو از توی کیسهش بیرون آورد و با هم شروع به خوردن کردند. ساعتی بعد دوباره برافت دادن تا اینکه دوباره خسته و برسته از حرکتی استادند و در این موقع غذای خودش خودشو از توی کیسهش بیرون آورد و بدون اعتناع و توجه به عبالخی شروع به خوردن کرد عبالخیر منتظر مونتا تا عبالشر اونو به خوردن دعوت کنه ولی عبالشر با ولع تمام غذاها رو میخو خیر که دید عبالشر هیچ تاروفی بهش نمیکنه. چرا جلو رفت و گفت آی دوست من قرار ما تقسیم غذاهامون بود و حالا نوبت توی که غذات رو با من تقسیم کنیم همونجوری که من غذا با تو تقسیم کردم عبالشر شونه رو بالا اینداخت و با دهن پر گفت قرار؟ کدون قرار؟, قرار؟, قرار؟ من که هیچ قراری بیاد ندارم این غذا غذای خودمه و بعد عبالخیر پرسید مگه ندیدی من اونو از داخل کیسه خودم بیرون آوردم. پس مال خودمه عبالخیر که داشت از گرستگی زف میکرد از عبالشر خواهش کرد که لاغل یه لخمه غذا بهش بده اما عبالشر گوشش به این حرف ها بده کار نبود که نبود و اصرار و خواهش عبالخیر بین نتیجه ابولشر در روز تموم به راه خودشون میدن و وابل خیر در این دو روز حتی یه تک نون هم نخورده بود. و عبال شر با باقی مونده غذایی که توی کیسه‌اش بود، شکم خودش رو سیر کرده بود و حتی حاضر نشد یه لقمه کوچیکم به هم سفر و دوست خودش یعنی عبال خیر بده. اونا رفتن و رفتن تا به یه دوراهی رسیدن. یه راه صاف و همبار و یه راه که کمی بیراهه بود و پر از سنگ و سنگلاخ عبول که از دست هم سفر خودش سخت عصبانی بود گفت نه nah, تو دلت با من نیست پس بهتره همینجا از هم دیگه جدا بشیم عبول با خوشحالی گفت <تصفح> فکر خوبیه خیلی عالیه و فوری پیشتسی کرد و گفت باشه باشه من من از این راه صاف و هموار میرم تو هم از این بیراه برو و بعد بدون خداحافظی راه صاف و هموار رو در پیش گرفت و پیش رفت. خیر هم با عصبانیت و ناراحتی راه پر از سنگ و سنگلاخ رو در پیش گرفت و مسافتی رو که تیکر تصادفاً مسیری رو دید که در یه سراشیبی از بین تپه های بلند و کوتاهی میگذشت. عبالخیر با قدم های کند و لرزان جلو رفت ضعف و گرسنگی آزارش میداد ولی چارهای جز پیشرفتن نداشت خلاصه رفت و رفت و یهو یه به باغ بزرگ انجیری رسید که در دامنه سبز کوه بلندی قرار داشت باغ پر بود از انجیرهای درشت و رسیده خیر با خوشحالی قدمش قدماشو تند و تند کرد و به اولین درخت انجیری که رسید انجیری چید و در دهن گذاشت و با خودش گفت آه بهتره تا میتونم از این انجیرهای خوشمزه بخورم و یه مقداریم توی کیسم هم بذارم خلاصه خیر شکم خودشو با انجیرهای رسیده باغ پر کرد و بعد زیر یکی از درختها دراز کشید تا کمی خستگی در کنه هنوز خستگی از تنش به در نرفته بود که دوتا کبوتر سفید به آرومی روی شاخه درخت انجیر نشستن یکی از کبوترها به کبوتر دیگه گفت میدونی کفاشی که در خارج از شهر دکون داره تمام روز جون می کنی ولی نمیدونه سه کوزه طلا زیر غالب کفتوزیش پنهونه و اون خبر نداره؟ کبوتر دیگه بخ کنان گفت تو چی؟ هیچ میدونی؟ مردم شهر برای هر لیوان آبی که میخورن پول زیادی میپردازن ولی نمیدونن که اگه زیر دروازه شهرشون رو حف کنن به اندازه سیلاب صاحب آب میشن کبوترا این حرفو رو گفتن و بقبقو کردن پر کشیدن و تو آسمون آبی به پرواز در اومدن ابوالخير وقتی این حرفه رو شنید از جا بلند شد و با خودش گفت آه اگه خدا بخواد اول باید برم سراغ اون مرد کفاش و ببینم حرفای این کبوترها حقیقت داره یا نه اول خیر کیسیگ پر از انجیرش رو برداشت و از دامنگ کو مفتا در نیمی آسمون بود که خیر به دکون مرد کفاش رسید مرد کفاش که جسه ریز داشت مشغول دوختن لنگ کفشی بود عبالخیر جلو رفت و بعد از سلام و احوال پرسی کفش خودش از پا در آورد و به مرد کفاش داد و گفت برای وصل کردن این کف چقدر دست میگیری؟ مرد کفاش دست از دوختن کشید و لنگ کفش ابوالخیر رو برانداز کرد و با صدای ضعیفی گفت یه درهم بلا بلافاصله یه درهم به مرد کفاش داد و مرد کفاش به وصل کردن کفش ابوالخیر مشغول شد چند دقیقه بعد کفش تعمیر شده آماده شد و ابوالخیر از مرد کفاش فاصله گرفت اما همینکه یک کمی از دکون دو کفش دور شد ایستاد و کفش خودشو از پا بیرون آورد و وصله اونو پاره کرد و در گوشهای منتظر غروب آفتاب شد ساعتی بعد آفتاب غروب کرد و رگاه های سیاهی تو آسمون ظاهر شد عبور خیر دوباره به نزد مرد کفاش برگشت و گفت ای مرد کفاش این کفشو خوب تعمیر نکردی من به جای یه درهم به تو دو درهم میدم ولی خواهش میکنم این بار با دقت بیشتری کفشم رو تعمیر کنی. و بعد کفش را از پاشت در آورد و به مرد کفاش داد. مرد کفاش با انگشتان استخانیش تموم سطح کفش رو برانداز کرد و بدون اینکه کلامی به زبون بیاره شروع به تعمیر کفش کرد. حالا دیگه هوا کاملا تاریک شده بود. حبالخیر با لحن آرومی به مرد کفاش گفت هی hey مرد من تو این شرق غریبم و جایی برای خوابیدن ندارم. اگه اگه اجازه میدی امشب توی دکون شما به سر ببرم و فردا اول وقت از اینجا برم. مرد کفاش چیزی نگفت. انگار صدای عبالخیر رو نشیده بود. عبالخیر این بار با لحن آرومتری گفت مطمئن باش به چرمها و وسایل دست نمیزنم. فقط فقط... یه امشب رو به من پناه بده مرد کفاش پذیرفت و کم کم به ساتش رو تو گوشه جمع کرد و دکون رو به روی عبالخیر بست و خودش به طرف خونش برافتاد. داد عبالخیر همین که تنها شد زمین زیر قالب کشتوزی رو هفت کرد و دید بله درسته سکوزگ پر از سکه‌های های تلا ولی از اونجایی که ذات پاک و نیکوی داشت به خودش اجازه نداد که به کوزه های دست رازی کنه چرا که اونا رو متعلق به مرد کفاش میتونست. بنابراین تا صبح که مرد کفاش برای باز کردن دکونش اومد سبر مرده سفیسود مرد کفاش به سراغ اول خیر اومد و به ساعت کارش رو پنکرد. کرد. اول خیر رو کرد مرده کفاشو گفت: ای هی مرد، هیچ میدونی تو از ثروتمندترین مردان این شهری؟ مرد کفاش خوسخندی زد و در حالی که مشغول کوبیدن میخی به لنگه سیاه کفشی بود گفت: عجب، پس من ثروتمندم و خودم خبر ندارم. <تص> شوخی خوشایندیه اول خیر به تندی گفت نه نه نه نه من شوخی نمیکنم تو تو ثروت زیادی داری و خودت از اون خبر نداری مرد کفاش با تعجب و ناباوری نگاهی به اول خیر انداخت و گفت ثروت زیاد من اول خیر سری به علامت تصدیق تکون داد و گفت بله بله تو اگه باور نداری بیا تا ثروتت رو نشونت بدم. اول الخير بعد سه کوزه پر از سکه‌های طلا رو از زیر کفش کفشوزی بیرون کشید. مرد کفاش به محض دیدن کوزه های طلا از حال رفت و نقش بر زمین شد. و وقتی به هوش اومد، اول خیر کاسه آبی بهش داد ولی مرد کفاش هنوز شگفت زده بود و باور نمیکرد که تو این سالا این کوزه های طلا در دکونش پنهون بوده و اونو خونوادش روزهای زیادی رو در فقر و نداری گذرونده بوده. یکم که گذشت مرد کفاش رو کرد به عبالفیر و گفت. تو هم در این ثروت شریکی جوون من حالا خوبه؟ عبالفیر خندهی کوتاهی کرد و گفت. <تصفيق> ولی این گنج مال توه. میبینی که توی دکون تو پیدا شده. اما مرد کفاش باز هم عبالخیر رو در این گنج شریک دونست و از اون خواست که مقداری از این گنج رو برای خودش برداره. سرانجام بعد از اصرار زیاد عبالخیر گفت باش پس بزار خدا شاهد من و تو باشه من فقط چند دونه از این سکه رو برمیدارم تا منو به شهر خودم برسونه و بعد چند سکه برداشت و از مرد کفاش تشکر کرد و به طرف شهر افتاد Música خیر بعد از مسافتی که کرد به شهر سیدر و چون تشنه بود به قهوه ای وارد شد تا آبی بنوشه قهوه خونه چندان شلوغ نبود و چند نفری در حال گپ زدن بودن خیر به صاحب قهوه خونه که مردی با سبیلای آویزون و چشمهای سیاه درشت بود گفت من چند لیوان آب میخوام خیلی تشنم همه ی نگاه ها به طرف خیر کشیده شد صاحب قهر خونه پوسخندی زد و گفت <تصفيق> چند لیوان آب؟ کدوم آب؟ مگه نمیدونه این شهر در بیابی به سر میبره و یه جرعه آب حکم طلا رو داره عبور فیرک از تشنگی زبونش خوش شده بود گفت فقط یه جرعه آب بدید دارم دارم از تشنگی حلاک میشم و بعد هم اضافه کرد و گفت اگه اگه به من آب بدید قول میدم اونقدر براتون آب پیدا کنم که این شهر پر از آب بشه باز هم همه نگاه ها به طرف خیر کشیده شد و کسی از بین اونها فورا این خبر رو به گوش سلطان شهر رسند سلطان هم دستور داد که خیر رو به قصر احزار کنند و چند لحظه بعد خیر در قصر سلطان و در مقابلش ایستاده بود سلطان که ریز نخش بود و شنل بلندی بر رو کرد به عبالخیر و گفت شنیدن که ادعا کردی میتونی این شهر رو پر از آب کنید درسته؟ عبالخیر تعظیم میکرد و گفت بله قربان، درست بر ارزتون سلطان در حالی که شنل بلندش رو بالا میکشید گفت اگه بتونی این ادعای خودت رو ثابت کنی و شهر را از بی آبی نجات بدی من تو رو از همه چیز بی نیاز میکنم. برد جلو اومد و با صدای آهسته گفت خب چی میگی؟ میتونین ادعات رو ثابت کنی؟ یا دستور بدم جمجمت رو بالای دربازه شهر آویزون کنن؟ اول خیر لبخندی زد و گفت آه، البته که میتونم من فقط به چند مرد نیرومند و تعدادی بیل و کلنگ نیاز دارم همین؟ سلطان با تعجب پرسید برای چی کاری؟ عبالخیر پاسخ داد قربان برای حفاری باید زودتر حفاری رو شروع کنیم سلطان هم دستور داد چند مرد نیرومند و تعدادی بیل و کلنگ در افتیار خیر گذاشتند و عبالخیر به طرف زمین نزدیک دروازه شهر یعنی همون همونجایی که کبوترها گفته بودند آب جریان داره حرکت کرد و دستور داد گودالی رو کندن و یه دفعه آب مثل سیلاب جریان پیدا کرد و شهر از بی آبی نجات پیدا کرد سلطان به نزد اول خیر اومد و ازش تشکر کرد و ازش پرسید جوون تو تونستی ادعای خودتو ثابت کنی حالا بگو ببینم به چه چیزی نیاز داری تا دستور بدم فوراً برای تو آماده کنند ابالخیر با خوشحالی گفت قربان من من فقط یه دکونه نونوایی میخوام که به نام من ساخته بشه تا هر ای رو سیر کنه اونم مجانی مجانی سلطان خنده ای کرد و دستور داد یه تنور نونوایی خوب به نام ابوالخیر ساختهاند مردم فقیر و گرسته از همه جای مملکت به این نونبایی میامدن و به طور رایگان و مجانی نون. بشنوید از عبالشهر همسفر عبالخیر عبالشهر وقتی از عبالخیر جدا شد به مزرعه رفت و در اونجا مشغول کار شد و تمام پولی رو که به دست آورده بود یه جا خرش کرد و مجبور شد برای هر لقمه نون سرگردون دستش رو به طرف این اون دراز کنه تا اینکه روزی مردی بهش گفت تو که اینقدر نداری و محتاج این اونی بهتر به شهر بری؟ اونجا نونوایی وجود داره که نونش مجانیه و تو هرچی دارت بخواد میتونی نون گرم و تازه بخوری ابولشر که این حرفو شنید با خوشحالی به طرف شهر براه افتاد و وقتی به نونوایی رسید دید که بله همسفر قدیمی خودش عبال خیر اونجا نشسته وجود ابولشر پر از حسادت شده و با خودش گفت این عبالخیر چجوری صاحب این نبایی شده این که چیزی نداشت بهتره برمو از خودش بپرسم بعد با قدم شتابزده شتاب زده به عبالخیر نزدیک شده ازش پرسید تو تو چجوری صاحب این نو شدی تو که آه تو به سات نداشتی عبالخیر پاسخ داد من هرچی دارم از خدا دارم و بعد تمام ماجراهایی رو که براش پیش اومده بود برای ابولشر شر بازگو کرد ابولشر شر که دچار تمع شده بود فورا از عبال خیر جدا شد و یک راست خودشو به باغ انجیر یک کوه رسوند ولی دید که درخت های انجیر خشک و بی و دو تا دیو هم نشستن و در حال گفتگو با هم دیگه شر که ترسیده بود پشت درختی پنهان شد و به گفتگوی دیوها گوش دیو اولی گفت. من وقتی داشتم راجب کوزه های تلا تو دکون مرد کفاش صحبت می کردم و اتمن کسی شنیده و چطوری کفاش سکوزه تلا رو پیدا کرده دیو دوم گفت مم. منم وقتی داشتم راجب سیلابی که تو زمین نزدیک دروازه شهر وجود داشته صحبت می کردم کسی باید شریده باشه و نه چطوری مردم شهر از بیا بینجا پیدا کرد؟ عبال شرک این حرفها رو شنید از اون جایی که ذات بدی داشت و از عبال خیر هم کینو حسادت به دل داشت با ترس و لحظ جلو رفت و به دو تا دیو گفت اه اه اه من, من, من می دونم چه کسی حرفایی رو شنیده اون عبال خیره دیوا نگاهی به عبال شر انداختن و ازش پرسیدن اسم تو چیه؟ عبالشهر گفت من من عبالشهرم دیوا نگاهی به همدیگه انداختن و به عبالشهر نزدیک شدن و گفتن هر کدوم از شما دوتا باید به با اسمتون پاداش بگیری. به بعد با یه جست به طرف عبالشهر حجوم بردن و اونو تیکه تیکه کردن و تو چایی که در اون حوالی بود انداختن و بهدین ترتیب ابالشر که وجودش سرشار از شر و بدجنسی بود به سزای افسانه ای خیر و ابو رو از مردمان عرب خوزستان براتون نقل کردم که امیدوارم از شنیدنم لذت برده باشید افسانه ها به عنوان بخشی مهم از ادبیات شفاهیند که سینه به سینه از گذشته ها دور تا به امروز نقل شدن و در گذر زمان به شکل یکی از عناصر هویت قومی و فرهنگی ما در آمدند شب خوبی رو برای شما آرزو می درمانه کار مشترکی بود است. نویسنده و سردبیر زینت سالحپور اجرا مهران دوستی صدابندار مهدی حدادی و تیگه کننده زهرا عبدالله زاده